افسونه افسانه به نام خداوند بخشنده مهربون، دوستان نازنین رادیونمایش سلام افسانه ها داستان های شیرینی هستند که در خودشون پیام یا درسی نهفته دارند درس هایی که میتونه راهنمای ما در زندگیمون باشه و مسیر درست رو تو زندگی بهمون نشون بده درس هایی مثل ایمان عشق امید و مهربانی در این برنامه می‌خوایم یکی از افسانه‌های کشورهای عربی رو براتون روایت کنیم به نام غلام خوشبخت که از کتاب افسانه‌های ملل اقتباس شده. اگه همچنان ما رو با برنامه افسون افسانه همراهی می‌کنین، شما را به شنیدن افسانه غلام خوشبخت دعوت می‌کنم. سالها پیش در سرزمینی دور تاجر ثروتمندی همراه همسرش اسما و دخترش جمیله و غلامش زندگی میکرد مرد تاجر ثروت زیادی داشت و بین مردم کشورش محبوب بود تا اینکه یک یه روز مرد تاجر مریض شد و مدتی بعد از دنیا رفت باورم نمیشه مادر باورم نمیشه پدر به این زودی از دنیا بره و ما رو ترک کنه زندگی همینه دخترم کاریش نمیشه کرد همیشه فکر میکردم بدر سال سالیان سال زنده میمونه فکر میکردم تا وقتی که من ازدواج کنم زنده میمونه و بچه های منم میبینه و با بچه هم بازی میکنه همیشه با این رویا میخوایدم زندگی نه با باورای ما کاری داره نه به رویا همون تقدیر هرچی باشه همون میشه اینو زمان یاد میگیری که خودتم تصدیم تقدیرت بشی من تقدیر رو باور ندارم مادر. به زودی باورش میکنی اگه تقدیر این باشه که منم در جوانی بمیرم چی نمیخوام ناامیدت کنم چند؟ ولی پدرتم فکر میکرد عمر درازی خواهد داشت اون کلی امید و آرزو داشت اما دیدی که چه اتفاقی براش افتاد یه روز مریض شد و افتاد و دو روز بعدم از دنیا من, من هنوزم نمیتونم مرگ پدرم باور کنم باورش برای منم ساده نیست <تصحيح> میدونی چیه مادر چیه دخترم حالا که پدر از دنیا رفته دیگه هیچ درآمدی نداری این منو نگران میکنه نگران نباش پدرت بندازه کافی برامون مال و ثروت گذاشته؟ بله ولی این ثروت یه روزی تموم میشه تو نگران اون روز نباش اون روزم یه فکری به حال خودمون میکنی ببینم جمیله تو قلامو ندیدی؟ نه از وقتی که پدر مرده قلامم گوشتگیر شده حق داره از بچگی قلام پدرت بود مرگ پدرت براش سخته قلام؟ هلام. بله بانو فوراً برو برای من یک تشت آب گرم آماده کن. چشم بانو بعدم یک فنجان قهوه برام درست کن این موقع شب؟ کاری رو که گفتم انجام بده چشم بانو دیر وقت مادر قهوه بخورین میخواب میشی مهم نیست من به اتاقم میرم من منم الان چند سالی گذشت زن تاجر نتونست مال و اموال شوهرش خوب مدیریت کنه به همین دلیل همه‌ی ثروتشونو رو از دست دادن و مجبور شدن از اون خونه بزرگ به یه خونه کوچیک نقل مکان کنن زن تاجر به هر دری زد تا بتونه درآمدی به دست بیاره اما موفق نشد تا اینکه یه روز فکری به ذهنش رسید جمیله جمیله بله مادر جمیله جمیله فکری به ذهنم رسید چه فکری مادر ما نجات پیدا کردیم نجات پیدا کردیم با این کار میتونیم خرج و مخارجمون در بیاریم با کدوم کار یادم به وقتی بچه بودم مادرم به هم علم تعبیر خواب و یاد داد خب خب دیگه منم خواب این اونو تعبیر میکنم و از این را پول به دست میارم <تصفيق> این حرفی مادر تعبیر خواب یعنی چی جمیله چرا میخندی این روزا خیلی ها هستن که دلشون میخواد بدونن معنی خوابشون چی. خیلیام هستن که به تعبیر خواب و اینجور چیزا اعتقادی ندارن اما من از اونایی پول میگیرم که میدونن خوابشون تعبیر داره ولی نمیشه به این کار به عنوان یه منبع درآمد فکر کرد مادر دیر یا زود همه میفهمن که این حرفا پایه و اساس نداره وقت دوباره بی پول میشیم تا وقتی که بتونیم از این راه پول در بیاریم به کارمون ادامه میدیم وقتی هم که مردم به این کار بی اعتقاد شدن میریم سراغ یک کار دیگه چی میگی؟ نمیدونم اگه فکر میکنین کار خوبیه من حرفی ندارم انجام بدیم باشه پس شو با هم بریم زیر زمین زیر زمین؟ هم؟ برای چی باید بریم زیر زمین؟ برای اینکه باید برم کتاب تعبیر خوابی رو که از مادرم پیبرسیده پیدا کنم آه. پاشو جمیده پاشو تنبلی نکن پاشو باشه و مادرش به زیر زمین رفتن و کتاب تعبیر خواب خوابو پیدا کردند زن تاجر از فردای اون روز شروع کرد به تعبیر خواب افرادی که می‌خواستن تعبیر خوابشون رو بدونن تا اینکه یه روز وحشت زده از خواب پرید وای <الصلا> چه خواب وحشتناکی بود چی شده مادر چی شد شده هیچی هی، هیچی هی. هیچی هی هی ای... هیچی هیچی کجا میرین مادر دوباره چی میگردی هیچی هیچی پس چرا قدر ای... شفته بابا چقدر حرف میزنی جمیله چی شده چیه مادر خواب بدی دیدین که اینقدر به هم ریختی؟ چی گفته خواب بدی دیدم؟ حتما خواب بدی دیدین که پریشون از خواب بیدار شدین الانم ناراحتین اصلا ناراحت نیستم خیلی خب پس آروم بشینین اینجا به من بگین چی شده چرا فکر میکنی چیزی شده؟ از چهرتون، رفتارتون از این همه آشفتگیتون ای وای امان از دست تو خدا لعنتت کنه کی من نه بابا کی با تو کار داره پس با کی هستین میگین خدا لعنتت کنه با غلام غلام به اون بدبخت چیکار داری یه چیزی بگم به کسی نمیگی نه من من خوابه بدی دیدم جمیله چه خوابی مادر خواب دیدم خواب دیدم که تو تو باب با غلام ازدواج می‌کنه <تصوت> <تصوت> با غلام آره آره با غلام هیچ چه مادر مگه میشه چون نمیشه منم عصبانیم دیگه <تصوت> وقتی میگم همه رو نمیشه یه جور تعبیر کرد برای همینه دیگه ولی من من خیلی نگرانم جمیله <تصوت> برای چی نکنه خودتونم خوابتون رو باور کردید نمیدونم پس برای چی نگرانین <تصوت> چون چون خیلی وقتا تعبیر خوابم درست بوده جمعه وای یعنی باورتون شد تعبیر خوابتون واقعیه چه میدونم <تصفيق> خیلی از خانومایی که پیشم میان و خوابشون رو تعبیر میکنم میگن تعبیرش همونی میشه که من گفتم ولی من به این چیزا اعتقادی ندارم نبایدم اعتقاد داشته باشی تو کجا غلام کجا اصلا همچین چیزی ممکن نیست من چطور باید تو رو به یک قلام سیاه بدم که مثل شبه خیالتون راحت باشه مادر من زن قلام نمیشم اصلا میشه به من بگین چه خوابی دیدین تو خودم براتون تعبیرش کنم خواب دیدم خواب دیدم تو و قلام تو یه باغ بزرگ هستیم یه باغ خیلی بزرگ معلوم بود شب عروسی تونه هم مهمون اومده بود منم داشتم از مهمونا پذیرایی میکردم تو هم خوشحال بودی وای جمیله چه خواب وحشتناکی پاشو مادر پاشو فکر کنم با پریشونی خوابیدین که همچین خوابی دیدین من میرم میرون یه هوایی بخورم زود برگرد چش خدا کنه قلام چرا از خواب من نمیری؟ اینجوری نمیشه این خواب دروغ نیست باید یه فکری بکنم نباید اجازه بدم جمیل با غلام ازدواج کنه باید عقلم و بکار بندازم و یه نقشه درست و حسابی گذشت. زن تاجر مدام به این موضوع فکر میکرد که چطور میتونه مانع ازدواج جمیله و غلام بشه تا این که فکری به ذهنش رسید پس پیش غلام رفت تا نخشش عملی کنه غلام غلام بله بانو زود باش بیا اینجا کارت دارم چاش بانو در خدمتم بانو میخوام تو رو به معموریتی بفرستم چه مأموریتی بانو؟ میخوام به این شمس بری این بله چشمه خورشید. تا حالا اسمشو نشنیدی؟ نه بانو مهم نیست؟ میتونی را بیفتی و از این اون سراغ چشمه رو بگیری باید هر طور شده خودتو به اونجا برسونی و از چشمه خورشید یک سؤال مهم بکنی چه سؤالی بانو؟ باید پیش چشمه خورشید بری و ازش بپرسی که دختر بانوی من چه سرنوشتی خواهد داشت؟ منظور شما جمیل خانمه؟ بله هم. من خیلی نگرانم خیلی نگران جمیل هستم برای همین میخوام بدونم چه تقدیری در انتظارشه چشم بانو فقط بفرمایید که باید به این برم همین امروز زود وسائل سفر رو آماده کن و راهی شو. برای شنیدن تقدیر دخترم بیتابم تابم قدام. چشبانه. از سائر راه میفتم. <تصفيق> غلامه بیشاره. برو ببینم به کجا میرسی پسر نادان؟ راهی معمولیتی شد که زن تاجر بهش محول کرده بود اون رفت و رفت و رفت اما به هیچ مقصدی نرسید چون نه سوادی داشت نه تجربهی ای. تا اینکه سر راهش پیرمردی رو دید که اصایی در دست داشت و گوزفندان سیاه و سفیدی رو به چرا می برد غلام به طرف پیرمرد رفت تا سراغ چشمه خورشیدو رو بگیره سلام پدر سلام فرزندم من از راه دوری میام باید برم به چشمه خورشید برسم. میتونی راه و به من نشون بدی تا به چشمه خورشید برسم؟ با چشمه خورشید چه کار داری؟ باید برم ازش بپرسم دختر بانوی من چه تقدیری داره. من راه و بلد نیستم میخوام بدونم از چه سمتی باید برم؟ فرزندم منم نمیدونم نشونی چشمه خورشید کجاست؟ اما ازت درخواست دارم چه درخواستی؟ اگه به چشمه خورشید رسیدی؟ ازش بپرس که چشم چوپان تا کی باید ننبال لبه باشه من از این کار خسته شده و دلم میخواد استراحت کنم جاش پدر حتما ازش میپرسم حالا میتونی منو راه رمایی کنی از کدوم سمت برم؟ من راه و بلند نیستم ولی فکر کنم اگه مستقیم به مسیر ادامه بدی به چشمه خورشید برسیم مستقیم به راهت ادامه بده چون اگه از راه های دیگه بری به بومبس میخونیم ممنونم. Hoda'nı geftar. Hoda be hamra itvashat. قلام از پیرمرد جدا شد و به راهش ادامه داد رفت و رفت و رفت تا به مرد کشاورزی رسید که در حال درو کردن محصول بود مرد کشاورز خوشه های سبز و زرد گندم و درو می کرد و تو رودخونه می ریخت قلام اول مدتی با تعجب به مرد کشاورز نگاه کرد اما بعد جلو رفت تا سراغ چشمه خورشید را بگیرد سلام برادر علیکه سلام من از راه دوری اومدم دیدم خوشه سبز و زرد گندم و داخل رو ریختی درسته من سوال هاست که دارم همین کارو میکنم با برای چی؟ چرا اجازه نمیدی خوشه سبز زرد بشن و برسم؟ اگه میدونستم چرا این کارو میکنم خیلی خوب میشد حتی نمیدونم تا کی باید این کارو انجام بدم ببینم گفتی کی هستی و از کجا آمدی؟ من گلامم و از راه جور رو برم میخوام به طرف کشمه خورشید برم چشمه خورشید برای چی میخوای به اونجا بریم؟ من باید از چشمه خورشید به پاسم تقدیر دفتر بانی من چیه؟ میتونی راهو به نشون بدی نه تا به حال ندیدم کسی به طرف چشمه خورشید بره ولی حالا که داریم پیش چشمه خورشید میری؟ ازت یه دخش اگه به چشمه خورشید رسیدی ازش بپرس مرد کشاورتاکه باید همه محصولاتش رو تو کنه بریزه در حالی که بین خوشهای سبز و هیچ توابطی قایل نیست باشه اگه به چشمه خورشید رسیدم حتما ازش میپرسم می‌تونی به من بگی از کدوم سم برم؟ برن؟ اه. همینطور مستقیم راه ادامه بده بارم انشاءالله که خیلی زود به چشمه خورشید میرسید. ممنونم برادر. در فنای خدا قلام به راهش ادامه داد. رفت و رفت و رفت تا اینکه به یه دریای بی انتها رسید. برای مدتی کنار ساحل ایستاد و به دریا خیره شد. ناگهان ماهی بزرگی را دید که روی آب شناور بود. غلام و ماهی برای مدتی به هم نگاه کردند تا اینکه غلام شروع کرد به صحبت کردن با ماهی. سلام ماهی شناور سلام تو کی هستی؟ من بلامم از راه دوری اومدم میخوام برم به چشمه خورشید برسم چشمه خورشید برای چی میخوای بری اونجا؟ باید ازش درباره تقدیر دکتر بانگم خواهد میتونی راهو به من نشون بدی؟ به من بگی از کدوم طرف باید برم به چشمه خورشید برسم؟ آره میتونم اما یه شرط داره شرطش اینه که وقتی به چشمه خورشید رسیدی، ازش بپرسی چرا من همیشه روی آب شناورم و نمیتونم به عمق دریا برم؟ باشه. بول میدم ازش بپرسم. حالا تو میتونی بَم از چه راهی باید برم تا به چشم خورشید برسم؟ آره. الان میتونی روی شونه های من سوار بشی تا من تو رو به چشمه خورشید برسونم. باشه. من آماده هستم. غلام روی شونه هاش سوار کرد و با خودش برد تا اینکه به چشمه خورشید رسیدند بعد با عجله به جایی که بود برگشت غلام با دیدن چشمه خورشید شروع کرد به مطرح کردن سوال‌هایی که به خاطرش این همه راه اومده بود چشمه خورشید <اس articulated> <سؤال> <minerari> <Ans Harrison> من از راه دوری اومدم اومدم از شما بپرسم دختر بانوی من چه تقدیری داره اقبال که اون دختر خودت هستی غلام اون دختر از آن توه از آن تو از آن من؟ بله از آن تو تقدیر هر دوی شما در یه نقطه به هم میرسه بود از آن هم خواهید شد یه سؤال دیگه دارم پیرمرد چوپان خواست از شما بپرسم تا کی باید گله سیاه و سفید رو به صحرا ببره؟ پیرمرد چوپان کسیه که باید حساب شب و روز رو نگه داره به همین خاطر باید تا ابد به این کار دامه بده مرد که چی؟ اون از من خواست از شما بپرسم چرا باید گندم های ترخوش رو با هم درو کنه و اونا رو داخل رودخانه بریزه بدون اینکه تفاوتی بینشون قائل باشه؟ مرد کشاورس کسیه که جان پیرها و جوانها رو میگیره و کارش پایانی نداره خوشه های سبز جوان ها و خوشه های زرد افراد پیر و سال خورده هستن ماهیه ماهی شناور چه جوابی داری؟ ماهی شناور از من خواست از شما سوال کنم تا کی باید روی آب شناور باشه؟ گفتلش میخواد به غره دریا بره و عمق دریا رو ببینه اما نمیتونه جواب این سال رو هم میدونم فقط وقتی خواستی برگردی؟ اول اجازه بده که ماهی تو رو از دریا عبور بده تا به خشکی برسی بعد از اون چه کار کنم؟ وقتی به سلامت به خشکی رسیدی آهست زربهی به پشت ماهی بزن همون موقع مروارید بزرگی به اندازه یک فندق از دهان ماهی خارج میشه اون وقت اون ماهی میتونه به زیر آب بره تو هم میتونی مروارید رو برای خودت برداری و به راهت ادامه بدی وقتی به ابتدای جاده رسیدی دو حوز سنگی میبینی در یکی از حوزها آب هست و در دیگری گنج اول باید در حوزی که آب هست آب تنی کنی چون بدنت مثل نقره سفید میشه بعد هم گنج رو از داخل حوز بعدی برداری و به راهت ادامه بدی تا به مقصد برسی ازت ممنونم چشم ممنون ممنونم تا چند دقیقه دیگه ماهی شناور میاد اینجا تا تو رو همراه خودش ببره یادت نره چی بهت گفتم حالا هم برو در پناه خدا برو به سلامت چیزهایی رو که چشمه خورشید ازش خواسته بود مو به مو اجرا کرد اون ضررب ای به پشت ماهی شناور زد و مروارید بزرگی از دهن ماهی بیرون اومد و ماهی به غر دریا رفت بعد رفت سراغ دو حوزی که چشمه خورشید بهش گفته بود داخل حوز اول پرید و سفید شد بعد از اینکه حسابی سفید شد سراغ حوض بعدی رفت و گنج و پیدا کرد و با مال و اموال فراوون به خونه برگشت. در راه کشاورز و پیربرد چوپان را هم دید و جواب سوالاشون به اونا گفت تا اینکه به خونه رسید. وقتی به خونه رسید، زن تاجر از خوشحالی سر از پا نمی‌شناخت. جمیله، جمیله، بله مادر، آی جمیله، بله، بله مادر چی شده؟ چرا اینقدر مستربی؟ مسترب نیستم مادر خوشحالم چرا؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ چه اتفاقی افتاده؟ بیا به چشم خودت ببین کی اومده به دیدن ما کی اومده؟ پسر عمود پسر عمود؟ آره پسر عمود حتی شنیده که پدرت از دنیا رفته به دیدنمون اومده ولی مگه من پسر داشتم؟ بله بله بله داشتی اونم چه پسر اموی. بیا ببین چقدر زیباست ببین چه ثروتی داره طالع تو بلند جمیل بلند من از حرفاتون در نمیارم ماده نبایدم در بیاری چون خامی و جوون. بیا خودت به چشم خودت ببین کی اومده اون وقت از حرفام سر در میاری منظورتون چیه مادر؟ منظورم اینه که من مطمئنم پسرم بود برای خواستگاری از تو به اینجا اومده خواستگاری؟ هم؟ ولی ما حتی یه بارم همدیگر رو ندیدیم چطور میتونه به خواستگاریم اومده باشه؟ خب ندیده باشین مهم نیست؟ مهم اینه که اون پسر عموده میدونه که خونه عموش توی رگای توه میدونه که تو از خونواده اسیلی هستی برای همینم اینجا اومده تا تو رو از من خواستگاری کنه. نه مادر اشتباه میکنی؟ اشتباه نمی کنم. دنبالم بیا با هم بریم پیش پسر عمود تا به چشم خودت ببینی چه پسر عموی شایسته ای داری و مطمئن بشی که برای خواستگاریت به اینجا اومده. قلان جمیله و مادرش پیش غلام رفتند زن تاجر که غلام و نشناخته بود مثل یه مهمون رسمی از اون پذیرایی کرد و بهش احترام گذاشت اون مدام از جمیله تعریف میکرد و از هنرا و خوبیای جمیله میگفت. تا اینکه موضوع ازدواج رو پیش کشید خیلی خوش اومدین ولی کاش زودتر خبر می تا بتونیم اون طوری که شایستتونه ازتون پذیرایی کنیم من خوب میدونم که تو پسر عموی جمیله ای از همون ای که وارد این خونه شدی تو رو شناختم به جمیلم گفتم حالا به خوب ببینم چه غذایی دوست داری تا برات درست کنم من سیرم ممنون تعارف نکن پسرم اینجا رو مثل خونه خودت بدون اینجا خونه که ای منه میدونم ولی گرسنه نیستم خیلی خوبه که اینجا رو خونه خودت میدونی خوشحالم که با ما احساس غریبی نمی کنی میتونم یه چیزی ازت بپرسم البته میدونم که از راه دوری به اینجا اومدی میدونم که پسر جمیله ای و برای خواستکاری از اون به خونمون اومدی به من بگو تو تو واقعا دلت میخواد که با جمیله ازدواج کنی؟ اگه شما اجازه بدین؟ بله معلومه که اجازه میدم برای جمیله هیچ همسری مناسب تر از پسر اموش نیست هم زیبا هم ثروتمند هم لایق و شایسته سپاسگزارم. خدا کنه بتونم جمیله خانمو خوشبخت کنم میتونی تو از شایستگی چیزی کم نداری پسرم شک ندارم که جمیلم کنار تو خوشبخت میشه آمیدوارم خب به نظر از مراسم عروسی رو کی برگزار کنیم؟ هر زمان که شما دستور بدین. فردا چطوره؟ خوبه؟ من انقدر ثروت دارم که بتونم ظرف یک روز همه مقدمات عروسی و جشن رو فراهم کنم خب دیگه پس مقدمات عروسی رو به دست خودت میپرم می خوام برای جمیله جشنی بگیری که توی این سرزمین نظیر نداشته باشه هرچی باشه جمیله دختر عموته و از خونواده اصیلیه همینطوره چشم اگه اجازه بدین من همراه چند مرد کار کشته برم بازار تا ماگه جشن عروسی رو تهیه کنم برو پسرم. برو خدا به همراه جمیله جمیله بیا بیا بیا بیا بله, آه. بله دیدی جمیله به چشم خودت دیدی وقتی پرسیدم حاضری با جمیله ازدواج کنی چشماش چقدر برق زد ولی من هنوزم میگم این پسر جوان پسرموی من نیست تو که تا حالا پسر آموت ندیدی چرا فکر میکنی اون پسر آموت نیست؟ نمیدونم. انگار برام آشناست. انگار یه جای دیدمش. بی خودی به مغزت فشار نیار قیقه این پسر شبیه پدرته برای همینم فکر میکنی که برات آشناس حالا به جای اینکه مدام حرفای بیهوده بزنی تا پسر بود برنگشته برو یک لباس مناسب انتخاب کن و بپوش بعدم با پسر بود برو بازارو گرونترین و زیباترین لباس عروسی رو بخر میخوام فردا در مراسم عروسی مثل خورشید. برای دختر احسن دای اون روز مراسم ازدواج جمیله و غلام برگزار شد مراسمی که تا اون روز نظیرشو رو هیچ کس ندیده بود هفت شب و هفت روز نوازندگان زدن و مردم به جشن و پایکوبی پرداختند تا اینکه جمیله و غلام راهی خونه بخت شدند ازت ممنونم جشن بی‌نظیری بود این چه حرفی جمیله این کارا در برابر خوبی و مهربونی تو ارزشی نداره میتونم یه سؤال ازت بکنم بله من من از وقتی که تو رو دیدم نتونستم باور کنم که پسرم می. همش فکر میکنم قبلا تو رو یه جایی دیدم فکر میکنم آشنایی اما نمیدونم کجا دیدمت جمیله <تصفيق> تو میتونی آدم رازداری باشی؟ بله اگه اگه به تو بگم من همون گلام سیاهی هستم که سالها تو خونه شما خدمت می کردم میشه می <تصفيق> <تصفيق> <قلام>؟ <تصفيق> نه، نه امکان نداره چرا؟ امکان داره من همون گلامم ولی این ممکن نیست غلام سیاه بود بیپول بود <تصفيق> بله، اما وقتی رسیدم به چشمه خورشید همه چی عوض شد مادرت منو برای این پیش چشمهی خورشید فرستاد که تقدیرم با تو یکی نشه تا خوابش تعبیر نشه قافل از اینکه خواست و اراده خداوند این بود که منو تو به هم برسیم یعنی یعنی بله یعنی این که چشمهی خورشید به من گفت چطور میتونم سفید بشم زیبا بشم و ثروتمند منم به حرفاش گوش دادم و با کلی ثروت از پیش چشمهی خورشید به خونه برگشتم مادر بیچاره فکر میکنه که قلام کشته شده آره اما مهم نیست جمیله بذار مادره تا وقتی زنده هست فکر کنه قلام مرده و من واقعا پسرموی تو هستم ولی یه روز ممکنه حقیقت رو بفهمه اصلا نگران نباش من میگم پدرم مرده و خواهر و برادریم ندارم مادرت هم که دیگه با بستگان پدرت ارتباطی نداره پس هیچ وقت متوجه راز من و تو نمیشه باشه حالا باشه <تصفيق> و جمیله با اون همه مال و ثروت و البته عشقی که به هم داشتن زندگی رو شروع کردن و سالیان سال تونستن به زندگی شیرینشون ادامه بدن دوستان این هم از ماجرای قلام خوشبخت که از کتاب افثانه های ملل اختباس شده و از افثانه های کشورهای عربیه که به ما میگه خاست و اراده خداوند برتر و بالاتر از خاست و اراده ما انسان هاست و در هر حال باید تسلیم خاست خداوند باشیم قلام خوشبخت تنظیم برای رادیو سهیلا خدادادی راوی شیرین سپهراد بازیگران بهناز بستاندوز، امیر فرهان محمد سعید سلطانی، امیر زنده دلان، گلچهره زند، قربان نجفی، و با هنرمندی محین نصری کارگردان بهرام سروری نژاد افکتور محمد رضا قبادی فر صدا بردار محمد رضا کننده زهرا عبدالله زاده افسانه ها رنگی از زندگی است. افسون زندگیتون دلنشین و مانا تا افثانه دیگر بدروب